یه صحبتی فرزاجه به تنظیم موادی و طبعا اینجای بحثی خیلی به صورت فکرست را به صدام انگیوز و در همین حمید مدار همین و توزیه مختصر اقربان رو می از ما در اصول به طور کنیم مناسب اینه که مباحث رو از همون جدا به دنبال این نباشیم که حسنا یک جامعه به این مسائل باشه این توضیحات صادقا گذرست که در علوم اعتباری تمامی علوم به احضاق و اقراض شنن به موضوعات در علوم حیقی به موضوعات مثل ترک و زن احسان اما در, در علوم اعتباری مثل ترک و زن احسان این اونو اون هستن اون در اقراض و اهدا دارن به لذا از ما در یک ام متعددی که موضوع و محمول و اصلا ما و حقیقت چون در آن خرده ما تأثیر دارن که به موضوع نداریم مثلا در این موضوع یه رو به مسابقه تشروی اون بحث خودش بحث به خود احکام اعتبارات قانونی بشه به طرف در ما درسی بشه به دراز خود حیفت موجوب احسان موجوب احکام موجوب ترابطی که اعتبارات قانونی با هم برن. یه بسه عاجب به اصلاح خودجرش و شو امارات بشه یه بسه جدادانه به حرفاز بشه و حرفازی که برمیگرده به حیفت زبان و با اینا هم جداگانه داری نداریم که مثلا سری بکنیم یک جامعی ما این مسائل متعدد پیدا بکنیم مادام عرض در عرض تاثیر, تأثیر دارن به دنبال هدف قابل هستیم به دنبال همون قراردنه هدف باشیم نه به دنبالی که حسنا قرارده موضوعی در خواهد باشیم در مباحث سرفایی خلاصه بحثتی روز بود و همه را چه در هم منحفتی روی ما در رسول میادیم ممکن از ادیه از موادث به عنوان مقدم بفت بشه خب ممکن اصلاسا ما که موادث الفاظ موادثی از قبیل حقیقت ورد رو به عنوان مقدم و مطلب بکنیم مثلا این که نقطه اول ما از ایجا به نقطه اول بوشیم به اون آیا در تنظیم این علوم اعتباری اون رو که مقاقی و از مسائل جدا می کنه مراحق بکنیم یا نه؟ شون مقاقی ها از مسائل علم جدا باشه به ذهن ما میاد که داری به این جمع نباشه یعنی مشکلی شد جدا جمع نباشه در این جمع رو در اون جمع یعنی به اقوارت دیگه مثلا همین که امروز الان مزده که علم خضادانه علم فلسفی عصورت مزده کنیم به نظر ما میتونیم همون مبادثی رو که با عنوان فلسفی عصورت ببینیم همون بهای صورت عصورت رو کنیم نیازی نداره طبیعت علوم اعتباری اینطوره یعنی مشکل در اعتباری نیست لازم نیست اون دوابط آمه رو که در کنگیم و هست در اون اعتباری هم هست را آیت بکنیم ناستان مبارس و افتان کلمه و معنی حرفی و معنی کهی و, و, و معنی اسمی تمام این خصوصی های که تو خود متن بزر میاده نیست که مختم هستی من نیست میشین کاری اما طبیعت و اعتباری این طوره به خلاف مثلا اگر شما راجع بس که شما در راجبی این بحث که چه چیز برای بدن مفید این فقط جزء اساسیه مثلا داروی با اما این چطور داروی از نظر بدن اقتصادی به سر باشه خب این چه دارویی اقتصادی به سر پرست؟ ما داروی شیمیایی مصرف کنیم یا داروی دیاری خارج از نظر این طبیعت علوم حمیدی بود من میگم خب این مطرحه در حالی که علوم اعتباری طور این فرضش که اول اینکه قابل توجیه نه چه رز ممكنه که ما ولی تو علوم اعتباری دست ما علوم ما علوم چون موضوع موحد مشخصید و باز در هر حال از عوارز حالا عوارز معنیش جنگی میخوا باید باشه بودش از عوارز و خاراتون موضوع بحث بکنیم حالا اون عوارز داخی باشه داخی نباشه مطلق عوارز باشه مراد این بحث دیگه ده. اما در اون روی اتماعی ما بازه چرا؟ چون ما به دنبال اونو تر از ره نه به دنبال موضوع باید ما اون بیدیم تو ا بلو بحثی که راجع به معنی حسی باشه این اون میتونه الان بحث معنی حسی رو می‌بینید در اصول ما توی مقدمات کل پوشیده wurde یعنی این کار نظر ما دروسیه و تو مقدمات هم. این چون قضا را بالفاظ بیان نه کل اصول به ذهن اون میاد که احتیاج نداره که اصلا تو مقدمات باشه اصلا در بحث موازع الفاظ تمام این الفاظ به موازع تو این یه نکته که احتمالاً اعت کردن که نمیخواه تبیین بشه نقصه دیگه یکی در اینجا هست ما در زن مقامسه الفاظ و رو سرمی کنیم از لغت و عنوان لغت و لحظ و زبان و خصائص لغت عربی به خصوص بحث بکنیم اما به هر حال گرای کدیه اما حاصل اصولی به حجیت در میگه یعنی این دیگه ما در نظر مزر... مزر... یعنی ما لغت رو به ما یه لغت برسیدیم هم غالبا این لغت رست و و صرف رست و آدم خودش ما به هر حال نفعه بحث چه در تحلیل های خودمون چه در استضحال های خودمون باید گراه بحث رو به حجیت برگردیم چون هره بحثاتی ما حجیته این هم در نظر داشته باشید و لذا ممکن است که ما در یک مبادث لغبی بیش از بحث لغبی وارد باشیم الان ما که یک مبادث ها, ها خب موارد دوغری داریم آیا عام دروغت جایی نداریم ادعای عمومیش خب اینه موارد داریم اما ما یه عده موارد اصولی و قانونی هم داریم اصلا تخصیص اکثر جایز هست نه خب این رفتی نزده. ما تو موارد ها که با عام دروغاد مصادره متخصص در مقام به اصطلاح لحظی ما این موارد جنبه و قانونی داره نیست زهن ما میاد برایی که انسجام سجاه و چون جایی دیگه نداریم این سری علفاظ رو هم که همین مواحث الفاظ بکنیم حالا پیانا از با مجبوری از با مجبوری بحث هایی که جمعه قانونی داره زیر بناس لغتی بوده اینا هم ها بیاییم که همین مواحث الفاظ جا جایی برای کنند نقطه یک سر روم که در مواحث زهن ما خیلی آول همیته ما باید تحقیق تفکیق بشیم بشیم بریم اصولی به دلخواد لحظی و دلخواد حق چون از ما یه تصل رو در اصول باز کنیم عنوان حقیقت و اعتبارات قانونی مثلا رب چید اتفاق ندارم مثلا چیه حقیقت حقیقت حقیقت حقیقت حقیقتی حقیقت حقیقت حقیقتی حقیقت مغلبی حقیقت ارشادی و از اون ما ترازاتی که به بین احکام وجود داره که خیلی مسئله مهمیه مثلا به که وجود چه ای ما سلزم عجوب شه این دیگه بشه ما به نظر ما این مباحث، باید که بحثی به عنوان اعتبارات و قامنی جداگانه بررسی بشه الان در اصول ما درده در یه در حوامر آمره چقدر بیرون الان این مباحث احفاظ نکلی میشه. وکه این واقعش اینه که انصافش اختضام می چون این بحث به لحظ کار هر داره این بحث بین این وجوب یک چه وجوب مقدم شد وجوب یک چه یا بارمت ازده این کاری به لحظ نداره میخواید افعال وجود میخواید نباشه. لذا به ذهن بنده تبا تخصیل این طور رویان که خوب ما دو بحث داشته باشیم. در یک بحث وقتی که را به اعتبار دقان صحبت میکنیم، متعرضی این حبا� یه بحثی که هم در مورد الفاظ، مثلا تو مورد الفاظ، الفاظ و ادبایی که در لغت هرکی در هم معنی اسمی یا معنی حرفی یا حتی لغت اسمی مثل نامی مثل اسم پن مثل حیال مثلاً حیال صل، معنی این تولو ما چه می‌کنیم؟ بناهی که در لغت عرب ادب و در اصطلاحات وانمی، و در روايات، و در آيات این الفاظی رو که مفید موجودا کدو الفاظی که مفید موجود تخلیری هستن تقییمی هستن چپایی هستن نفسی هستن, هستن. تمام تو بخش الفاظ یعنی ما دو بخش داریم. یکی تو بخش اعتباد قانونی یکی تو بخش الفاظ اون بخش مثل مقدمه بازی, بازی تو اعتباد قانونی اینجوز الفاظ الفاظ باید. و اگر یاد آنون ما تو بخش مقدم نوازی و تو بخش متلازمان عبارت حقوم نیم هم از سنیه ها هم از زیدیه ازدهی مواهد مستی مقدم نوازی رو تو بخش اتبارات آنونی بوده تو حق موازده الان درکت که آقای ما از معادم بیریم زند رو کنیم. از هرکاز میگرد مقدم نوازی رو بخش مقدم نوازی رو در مواهد جشم مواهد از هرکاز مقال سرکاز اگر بخیر مطلب کنیم به این صورت عدواتی که در این وقت هست برای یا در روایات یا در آیات برای اصواد وجود، برای اصواد قرمه و نکاتی که به جهات لحظی برمیگرده به ذهن ما میاد که اگر این دوتا رو تبکیش بکنیم خیلی خوب باشه یعنی بست ارتباط قانونی <تصفيق> و بست <ارتباط> قانونی <تصفيق> بس رو یک جا مرافضی که برمیگرده به صحورات و تحلیلات علفظی اون رو جایی دیگه نفر بکنی خلاصی وقت چون بنامی سیدیوان این مرافض بشین تقاطیش هر کنون نفره به اون وقت بعد از این مقدماتی که حرف کردیم متعرض کلمات مرحوم استاد عزیز الله هسته ما حرف کردیم بنای کار این که برمان محن مراجعه آهایان از کتاب مرموستاد از این نصبه رسول یه دو بشنگ روش دید. اما به یه تسال سالی که چاپوین چره هست. از سخه یه و متعرض مبادث حدییت ظهور شدن ایشون اولا فرمدن که حدییت من اجمال میکنم می کنم تقاطیشون بردارون مراجعه کنم من پرد به عنوان اینکه ترخط بحث مشخص بشن. از عمور قغلاییس مسلم هست و جایی بحث نداره به رضا بحث نمی میگن این کلام در سه نقطه هست. آیا حضییت زواهر مشروط است زن به وفاق با زن ایده کنیم یا به عدم زن به خلاف یا اصلا شرط نداره همه دوگو من آیا حضییت زواهر محقص است که من خصد اتامو که به مرموم محقق قومی نصداده شده هم رسالت هم در باره حجیت خصوص زبانه کتابه که خب طبعا ایشون وارد این بحث شدن که الان ما و کلمات تحولی رو گذرند البته اثر در کتاب‌های متأخر ما یک مجموعه کلمات از اخباری حالا ما در هر کدوم از اون مبارسی که وارد شده ریشه ها و اصول محضب را از کنیم اولین کتاب اگر آن خواست مراجعه خارجی بکنن به این مطاله این از مطاله دوم که برمیگرده به کلامات محوم احرام قومی به در کتابیشان موجوده راجب کلام اخباری ها اولین کسی که این بحث این بینیم توسعه مطاله کرده محوم ملا محمد امین استرابادی در کتاب الفوار در مدنیه که اوقات ایشون نظر نزد حاضرشون دید و بعد ها دیگه با در کلمات اخباری به شکل دیگه اومده. من ها مرموم صاحب حضرات و دیگران ان شاء الله عذر می خوام. ریچ هم توضیح دیگر مرموم خیابان که در این اصول متأخر ما اولین کسی است که مترجم کلمات مولا محمد امین استرا با شده این قاعده اصول مذهبی کتاب در اختیار نبوده. همه جا علل حکایات مرمون سال کفایی کتاب در اینکان بوده اما به نظر ما خیلی به درقت مطالب رو یعنی اونایی که محل حساسی کلامه نر نرموندن بعضی ها هم مثل مرمون استاد هم, هم کتاب رو مراجعه نکردن کتاب توازه مدنی رو بله ای بعضی از امهاست کتاب هایم توضیح دادیم مرمون حاجی نوری ایشون مقدار زیادی از عبارت کتاب رو ارده که مثلا بگه کنون مطلب مراده این و خوبه به درازه علیمی انسان کلمات رو از مسادر حصیبی استفاده کن در سفته یه تدار 46 بعد از این سبسی که ایشان راجع به مباحث حجز رو بود پرموندن با عنوان تذیر یک یه زیری خاتمه اینهایی در مطلب اینجا ایشون زیر پرموندن ایشون در این تذیر در اعلام اند لکله لحظه دلالات سلاسن سه دلالت داره دلالت اولا دلالت به اصطلاح تصوریست دلالت سانی دلالت تصدیریست لکن به نحو اراده استعمالی. دلالت سالست دلالت تصدیریست به نحو اراده جدی این سه دلالت رو مرموم استاد در اینجا عنوان تزدین محضر فرمودن بعد وارد بحث شدن و متحرس شدن و در زید دلاغت سالس محضر بیرون راجع به مسئله به اصطلاح ظهورات این چون این در این چاپی که شده در وسط بحث مرموم استاد در این تفریه صد و یک مطلبی رو نقل کرموندن بله بعد در این سرسنویسی اصحاق عدم القفله داریم لن تکن جاریتا به نصف غیر المخصو در این حاشه فرموندن بر تحقیق انها جاریه. که ما در استاد اینه من این من بخواستم نکته‌ای عرض را بگم بین اون مطلبی که در محن آمده و بعد زیر خودشون نظر کردن یه نکته هاکوتی هست که مثلا کتاب هم اشاره کرده حالا در نحوه تحریر کلمات اساتید به نظر ما خود اون تذیل ایشون مقدمی نوشته این چیزی موخر بوده اگر مقدمه میوده بهتر بود که موخر رو می‌دادن شما گفتگو آخر بوده من قرادم از این بود که در نهره بحثی شما ما امروز داریم به که ایشان اول تغییر ایشان میخونیم بعد بارده اون چه که ایشان برمانه چون این به نظر ما رویشه وزیر منای اون بحثه به قرار من من ام دمسوندن که معلوم بشه آن وقت مطالعه شد ایشون فرموندن که هر لفظی سه دلالت داره یک دلالت که تصوریست که مثلا یه خوابی از کلمه آب معنی خاصی به ذهن ما یه دلالت تصدیقی. دلالت تصدیقی رو در اصطلاح اصول به دو تا تخصیم کردن یکی دلالت نحر اصطلاح استعمالی مراد استعمالی یکی هم مراد جدی البته چون نمیخوامد آنه همه این جمعه تحقیم کنم فقط در نحوه مثال در نحوه اصول البته استاد این نحوه ازده لیکن من موجب شعرز میکنم که برم تحقیه بشید در با اصول شبان آدمتر یک تفکی که ما به دلالت استعمالی مراد استعمالی و مراد جدی شده نستی که گرن اکنی علما برد گلات و فصاح الولما مراد استعمالی در اکنی علما زاره که همه یا علما وکه با گرینه یا دلالت استعمال علما میفرند مرادش عدود علماست این اصطلاح هم مراد جدی و مراد استعمالی پس اینه که تفصیح ما به این مراد استعمالی و مراد جدی داده شده این شوالا روشن این اجمال ارز میکنم این رو اصطلاحا البته این مراد جدی معاملی یعنی هم داره که بعد از این تفصیحش با این اجمالش این, این نحوه حالا اگر ما مراد جدی رو اینجوری معنابه کنیم این نحوه استعمال این در خود به معقول یعنی در ضمن ممکن متا نیست البته قضایایی در منطقه مطرح میشه فقط همون موارد استعمالی مطرح میشه تقرب نمی‌فرمایید این موارد جدی بین معنا این گنجینانا شرط داره موارد بی بیات که دولت‌هاش خاطر ارجو کنند بی معنا نیست این یکی از خوارج مادرین ما و بین مباحث فلسفیه منطقی است که در اینجا در خصوص اینا میگن که ممکن است لا ظهور در عموم داشته باشه اما اون مراد جدی نباشه فقط مراد استعمالی باشه این زیر بنایه بحثای قانونی و حقوقی که اینشانا توضیاتش خواهد هاد. اون وقت در دلالت تصوری دلالت اول که دلالت تصوری به تعدیل ایشان که اون رو موجب موجبند انتقال المعنى الى ذهن سامع و علمی و ذهن و این دلالت احتیاج به اراده نداره برای لفظ نفسیهی یوجه با انتقال المعنا این من تا بگم آب همین معنا به ذهن شما در انتقال بگم بعدی شون میفرمن من هست میگرم شون آقای مراجبان موقعی و ها ده دلالت رو سمه این در به دلالت نصوریه مبرتم و به دلالت وضعیه اصطلاح دلالت رو در اینجا در اصطلاحات اصطلاحات به حسام ها بیشتر به اعتبار ان منشه اهلوز و هوه ان انجهلل خلقه بین اللحظه معنا به حیث و یعنی تقل المعنا الى ذهن هنده سماه اللحظ. این تابه خلقه به ارتباط وضعیست است. بعدشون میفهمن و المختاره اندن آفان و دلات الوضعی یک قیره ها دلات وضعی اونی که بشن وضعی کرده دلات تسبیحیست نتصوریم لعنه ها به دلاله فکونه قرزن من الواضع لفکون وضعیه هم ولان سب تل... تنصیمیت ها به دلالت اونسیه ایشون اسمش رو دلالت اونسی بودشتن از منشعه ها اونس و رن به المعنی لکست و تستعمال لحظه فی للوست لحظ. بعد ایشون البته در بالا تحبیل که جعل ال و قلقه بگیرن لحظه المعنی بالا لان خوندم عباردشون ای ظاهرن ایشون کار شکار کار مغرب باشه بعضی از اصطلاحات رو هم به کار میشه بعضی شما ما در کرناه و بحث من امن الوز عبارتون انتعف و دلوازه و و انبومت و معنا تفریم معنی فلان معنی فلان باید اینچو با المعنی فلانی تفریم المعنی فلانی معنی فلانی فوایی به لفظ فلانی و علیه فلایتونو مجرد خطور معنات ذهن انده سمایل لغز مستمدن الى تحهدی بلی بل اونس ذهن ده خب ایشون نخواب بفرامل که دلالت تصوری دلالت وضعی نیست اون که وضع شده دلالت تصوریست نه دلالت تصوری این مطالب که ایشون در اینجا این مطالب کن صادرن گذشت و این صادرن خوبی است، حالا باید آیدوی نحنی که بخشه شده اکتفا بشه سیده بخشه سیاه بخشه بخشه دیگری مجموعا مطالب خوبی در اینجا بخشه شده تحبیر ایشان تعبیر و خونسی و قول خونسی و خونسی و خونسلت این تحبیر به اصطلاح اصطلاح قول ما هم جعبیر اختراری خودی ایشانه اصطلاحی که در قطب اصلاح روانشیناسی الان و شده به جوی دلاته اونسی بیشون تحبیر کردن از تحبیرم به تدایی معانی بیشتر احتمال مرادیشان تدایی معانی باشه از دلاته اونسی تدایی معانی واقعی نیت در انسان و خلاصه تدایی معانی اینه که وقتی انسان یک مطلبی رو در یاد میگیره مجموعه از حوادث واهم هستن در سوی مثلا اگر یک شهر مشهر رس به حرم مشهر ممکن ممکنه در حرم یکی از دوستان بو حدیگه یک داده ممکنه در حرم یک دعوای بوده مثلا دوما این مجموعه حوادث در زن رو یک جا یاد بسیار در مرحل یادگیری که یه مرحل یادگیری داری که مرحل یادابری داریم. تو مرحل یادگیری اینا رو یک جا میگینه زن انتقال به زن میدانه چون مرحل یاد گاهی یکی از این حوادثه میخواد یاد کنه و چون در دینه یاد با هم بودن اونای دیگر میاد. این آمدن معانی دیگری که مقصود نیست، قسمش رو تداری معانی همخانی مخانی به ذهنی همخانی سورت های ذهنی مثلا اگرش بگم زیاره میگه بله من امسال حرم مشرفشم یادش که میاد حرم یادش میاد که آقام بهش حدیه دادم یادش که من حدیه فرانه قدارات رو کنم. یادش میاد که تو حرم اون دعوا هم شد به قطع این استاله هم بشین قداری معانی همخانی صبر ذهنی در مرحله یادگیری تعلق این صبر ذهنی که در مرحله یادگیری با هم دیگه ارتباه چیز ادیو ارتبا محلومی ندارن ا هیچ اثباته اون هدفشون اینه که ببینین که شما تصور زیارت میکنه و این که رابطهشون بتونه هرجدی الا ما علل نیست ها هدفشون این بود نمیخواد ما دنبال اثبات عللی و معلولی باشیم هیچ علت و معلولی نیست در مرحله یادگیری با هم اومدن تو مرحله یاداوری هم دیگه نمیریشن نمیگه به نحوی الیگیت باشه نمیگه هر امر رفتن سبب بود برای حدیه نه و نه اینکه شما تصور حرم سبب بود نه کلیتی نذاره هیچ نه همه در عرض واحدند فکر میکنیم؟ لكن طبیعت یادآوری اینطوریه انسان وقتی یک صحنه یا رو یاداوری میکنه همون چند تا مفهومی که در مرحله یاد میی در ذهن شماست با هم میاد اینو اصطلاحاً این تعبیر تضایی معانی حالا مرحوم استاد تعبیر کردن به جبروت می‌گیم بعضی‌ها هست که با اصطلاح عاشا نیستن یک معنی رو درک می‌کنن اما اصطلاح رو به کار نمی‌برن. این که تعدیل صدای معانی مثلا در کتاب‌ها مثل مرحوم مظفر هم در خصوصشون ذکر کردن این یه تعبیری بوده که در حوزه روانشناسی الان هم موجوده. یه بحثی در روانشناسی که توی مرحله یادگیری و یاداوری این نکته براعات میشه تو یاداوری شما فرقی همون نکته‌ای رو که منظورتون یاداوری نمی‌کنه. خود نفس شما بقیه رو هم میاره چرا؟ چون خود معانی با هم ارتباط برن به دیگه تیم افرادی این تدادیه همکانی. خود اون سوال ذهنیه هم رو میخواند دقیقی کرد؟ ایشون به حال بفهمنید که اون چی که بشر رهد کرد دلالت تصدیری بود چون وزن یکی از حاجتهای بشری بشری حاجت بشریشون از این راه این بلی که اثبات رو کن دلالت تصدیقی اقوال حاجت حاجت بشهی بی این نبوده که دلالت خبولی قرار بوده حاجت این نبوده که بی این این هست ای بذاره حاجت این این اونی که حاجت بوده میگه اینک بیار آب بیار احتیاجی که انسان رو منجر کرده مثلای ون و به تحضیمشون به تحفظ به التضام این تحفظ به منشر منشه چهی مخلوم بود نه محکوم تصوری اون محکوم تصدیقی مثلا بگه من مریضم در بازه برو بیرون یک محکوم تصدیقی تصدیقی بیر نه یعنی یه مطلبی که تامنه این رو بخواسته و چون گفت آب بیا آب در آب تضا کن آب یواش که به تحبیل اینشان اونسی بین ذهن و بین لفظ آب پیدا کرد اسم این رو ارس کردن مشونان می حالا له دایره من می مراد کلمه ذکر می که یه چیه شونان اینو می بشه کمالی 29 دایره نازک چیز دیگه بوده به هر حال اونی که الان متعارف سره از این دلالت عمقی تغییر میکنم غالبا به تضایی معانی اصطلاحی می تحلیل روانیشان هم نسبت خدمت اون عرض کردم اون تحلیل خلاصش اینه تو مرحله یادگیری چند صورت ذهنی یاد میگیره انسان تو مرحله یاد آوری. یکی از اون صورت را دیده بقیه هم هنگاهش میان این تو مرحله یاد آوری. چون اون صورت در نفس انصاب با هم دیگه پیدا کرد وقتی یکی شیعا بقیه را همراه هم خودش ریخانه هدائی همخانیه دقیقه شاید مرادیشان همین اصطلاح هدائی ما هم. حالا برای اینکه این ایشان روشن بشه بردسته چون به نظر ما سر کردن ظاهرا رفتیش نده اون به نظر ما توی مبحث ظهورات این مبحث وقت خیلی تأثیر فراغان داره راج به وقت و لغت و زبان که گاهی به تعبیر قرآنی مثل بیان، بیانه به تعبیر علمان آدم حالا این یکی از مسائل بسیار پیچیده زندگی بشته و مسئله قدرت تعبیر انسان نه به لحاظ فیزیکی فقط به اصطلاح این روز خب میدونیم به لحاظ فیزیکی چون وقتی انسان از موجودات نادر یا یعنی توچی و اکیلاتو حیوانگر میتونه هست هم. اما در محارف حیوانها مثل بوسفن یا اصلا هست وقتی رو میبندن بین سخت دهن و زبان فاصله ایجاد نمیشه بوسفن وگه دفت بکنیم سخت دهانش جوریست که با زبانش فاصله ایجاد نمیشه به خلاف زبان انسان که وقفه داره بین صفت و بین زبان فاصله هست یعنی حالا که وقفی داره این تا موجود منشه و جسم منشاء تولید یعنی صدا که در انسان در میاد این یک فیزیکی است البته قوّت در خصوصاً نیست در میز، در شطور نیست در اثر نیست بلکه در هر صورت مراد به اصطلاح ها هر کلمه انسان حیوان ناقص این باشه احتمالاً این خریده فیزیکی ظاهری باشه قبیهی در انسان باشه احتمال داره مرایش از ناصف چیز دیگه و هر حال این یک مرحله ظاهری نطفه در انسانه که قابلیت داره اصلاف گناهون رو که اصطلاح هم بشینگی مخارج و حروف عذاب کنه این امر ظاهری خود لغت و حقیقت لغت و توانایی انسان در لغت یکی از واقعا اسرار و حقاید عجیب وجود انسان اگر اون قدرت رو ما به عنوان حسل انسان و ممید انسان و جوهر واقعی انسان بدونیم عمر گذافی عمر واقعی حقیقتش هم چیه؟ چه تحلیق بکنم؟ بحث خاص خودش داره نه در اینجا جشمون هسته اون چی که ما در اصول متعکر شیعه روش زیاد کار کردن که نه اصول متقدم شیعه اینقدر داره و نه اصول اهل سنت. نه دقت دقیق کنیم در حد بیان رابطه و تا حضی تحلیل این رابطه خود وجود رابطه وجدانی است یعنی شما اگر خرصید الان در اینجا تا دوگمه برم دارید یکی رو این شراب روشن میشه که این میزه این کلر روشن میشه خب میفهمید می که به این دوگمه با اون یه رابطه ای هست اگر این شما هر لحظی که میگین معنی خاصی به ذهنون میاد معنی شو رابطه ای هست بید. ما در کتب و بسید خودمون روی این رابطه بحث کردیم یعنی در اصول ما در مقدمات مثل کفایه در این دعای حقیقت این رب بیشترین بحثی رو که در این کتب انجام شده حقیقت این ربطه چرا از ربطه شنیدن لبطه آب یک معنا به ذهن ما میاز دیگری به ذهن ما این ربط این ربطی که پیدا کرده شما بریم این دوبه با اون وسیله بردی یک ربط سوال اینه که این رفت که شما چیه؟ این سوال، اصل سوال اینه در کتب اصول ما تحصیلشیه وجود وجوه فرقین بحث از سابقه داره جدیدم نیست اما اون در کتب ما الان بیشترش روش شده نسبتا کسات اول و کسات احتمالاته پس عبور حسین بحثی که از قرن شارمونی کنان این مسئله لیکن از بزرگان متکلمین مؤسده درمه و دیگر هم دارم که اشاره می کنم لکی در خصوص اصول متاثر شده صاحب خیلی مصطفا احسام این بحث رو بررسی کرده یک تحلیلی رو یک نامه بیان رو این بنده دارا تحصیل ارث کردیم که موجهی از این احوال و احتمالات در این بحث دیگه تعابیر مستتر به خود من ها اگر مؤاخذه از بنده کلمات اصحاب نیست قبول در کلمات اصحاب نیست لیکن یه نوع برداشید که این جانب از کلماتشون میخود از قبل این رفت رو به تو کلی به دو قسمش تفسیر کرد در کلماتی که آمده دی. یکی این که ما قاهل به این رفت باشیم که استراحاً اسمش خوده یکی این که اصلا قاهل به این رفت نباشی این که از قبل این مرحوم استاد قلقص و رفت تحبیر میکنم بردیگن میکن که تعهده به نظر ما خیلی تحبیر دقیقی نیست کسانی که قاعده به مکتب تأخد هستند در حقیقت اینها اولاده و قاعده نیستن دقیق نکنیم یعنی به نظر ما کسانی که قاعده به تأخده هستن قائل به اولاده و رابطه بین لبز و نیستند. نیستن اون رابطه به مقداریست که طرف تأخد داره و شم لفظه پدیده اجتماعی سن تا... و شمیشون تحبیر نفرموندن جلده برم تحبیر به التضام نفسانی پرموندن مرادی باید این باشه یک نوع التضام نفسانی جمعی کلابا هم من عرض کردم. اگر من بنابرای دارم یک لفظی بگم مرادم این باشه این لفظ نمیشه این لغت نمیشه تا نرسته به حد تقهیم و تفهم این لغت نمیشه قوام لغت بودن باید به تفهیم متفهم باشه یعنی چه لفظ متفهم یعنی میشه من اگر گفتم آب مرادم اینه و شما هم این رو میفهمید خب بحث بکشید شما هم که میشنید شریبه آب میفهمید آب یعنی مایع خاص و مراد من رو آب میدونید پس دیگه اون نکته اساسی در در از هر حرف کردن مرمون استاد این توضیح و در کتاب اقو که از باید نوشتن نویستن اشتار کردن این مثلا موسیقی گفت گفتن مطا امید و مهمل کلانی امید و سهمل یا بعد عرف کردن کسانی که غالی به مکتب تأخدن به مرمون تأخدن لفت به کار نبردن که قضیه تشیر بدن این یه تأخد عملی لفت نداره لفت همیشه حدود داره تعهد عملی حدود نداره اشکالیشون اگه دفت بکنیم مثلا بگو خواهید در مجاز چی میگی، اونجا به هم میخوره. این مال جایی که لفت باشه این اصلا لفت نداره ولذا یک مقدار همیشه ما الان هر کنیم کرد خود در اصلا متنمتی این فرم نشده اگر ما مختب تعهد رو گرفتیم، همیشه یک مقدار تو زهورات مشکل داره کاش لن چون این ظهور برمیگرده به تحفید تحفید هم یک امر لفظی نیست یک قراردازی قانون نیست یه برنامه عملی یه سیره عملی در سیره های عملی کم و زیاد میشه پس مثلا ممکن است پس در چیزا تن اینطوره یه نوع برینی داریم که خیلی گرده شبیه عدد نیست از برینی گرده به عدد شبیه داره که برین خب دیگه یعنی این میاد در جامعه های مختلف و فرهنگ های مختلف و تمدن های, های مختلف و انواع زندگی که داریم ممکن است یک کسی یک مجموعه خانه ببینید کسی که یه خانه نیستیم این بلانه بیشتر از یه خانه مثلا این مثلا با آشیانه کلا دقت می این یه بحثی است که چون درش تضبیق و تفهم با عنوان یک تعهد خب دقت بکنید یک تعهد طرفینی می بند به وقتی این تقسیم بندی ارتباط خبصید این هایی که قاعده به تعهدن در حقیقت اوها میگن رفتی نیست رفتی بین لحظ و معنا نمیاد اینطور نیست که رفتی پیدا بشه. من تعهد میدم ولیذا روی مبنایی اینها یادم میاد وقتی انتون مامیتون چونشون دورهی که فرموندن آخر برد تحتیل فرمونم بسید رو اون اول کارکیشون گفتیم کن یا حباً سه به قاعدشون باز مشترک منکر بسید بردین بله مشترک منکر. خبز معنای تعهدی چون بود ممکن مشترک بشن چون نمیشه انسان ششاره تعهد بده چون مشترک دل فنه ممکن مشترک هن. اشتراک لازم رو ممکن است چون شروط چون تعهد فقط با نمیشه چون غرض از عقد فقط مفهم بود به کسی پس فنابراین یک تقسیم بندی چون رو من ارض می کنم ارض در کتاب از خواب نیامده این تقسیم بندی از بنده پس یک تقسیم بندی اول یک رابطه وجود داره به قدیشون حالا این رابطه چیه؟ دو رابطه وجود نداره که این مقتبت احوده من به نظر میاد که مکتب احود در حقیقت منکر رابطه بحثایی در حقیقت در, در, در حقیقت رو همین نقطه هست. شما تعهد قابل بشه به نظر من البته این را تفسیر ما هست, تحبوت این هست که این <معنی برغم> است که رابطه‌ای رو بین لفظ و معنا قبول نمیکنه یه تعهد اینه که تعهد روز آب به این معنا فردا آب به معنای دیگه برقرار باشه نه مجاز نقل استعاره چیزی نیست تعهد یه نوع اجتماعی است که به افراد داده میشه روشن شد حالا ما مساله که رقص مساله که رقص را هم میتونیم به طور کلی به دو دسته تقسیم بکنیم چون به این تقسیم گفتنه من اجیمال شهرز میکنم که معتقبا در بحث زهورات این تاثیر داره به خلاف ممنون قصد یک دست کسانی که یک نوع وقت تکیمینی قاهل حالا به هر نه یک دست کسانی که قائل به رفت اعتباری هستند. از از مرموم آغازی ها کلامی نفت شده که هم تکیمینی میدونه هم اعتباری پیگر بیشان شده اکراز شده کسانی که چطور این رفت رو هم تکمینی نمی دونن اعتباری است از خصائص ازیاد خصائص نه نشر از کار اهل نهش را نمی گوتی کلام ایشان معناش اما کسانی که قائل به رسم تکمینی هستند ما این کسانی که قائل به رسم تکمینی هستند مثل ابوالحسین بخویی که قائل به انوریت کامند یعنی مجموعه عواملی وجود داشته من در کوهستان در دهابوی معنا طرف ما رو به این معنا کار این مجموعه اولیه رابطه تکلیمی وجود داره تکلیمی علت وجود داره ما بین ما این رو مثلک اول اسمشه میداریم مثلک درمون رابطه تکلیمی رو درمون می کنه به نحوی علت قامل. یعنی مجموعه اواملی در بین بوده درکه این اوامل این طور رو درکردنی لفظ بشه ما می که بوده هم بیان تا اون مسئله ترجیه برامار جه لاز یه اعمام دیگری هم بوده. بر میگه دستم به خارهنج نردم بیش ام ای نردم با خصوصی گل نردم و این هم رأی جوابم. اسپیشین این رابطه تکیمی به نظری اختراع. رأی استقبال کنم گفتن نشد. یک نظر رابطه تکیمی به نظر غریزی نه به نظر اختراع. چون به این کاری گفتن نشد. میخوام خب جایی پولی بدم. اون رابطه تکیمی به نظر غریزی یه اصطلاحی سه مروضی در محاول صدادی معانی از اون به عنوان انگیزه های شبی شده در زبان فارسی در کتب عربی چون قیلن حدام اصطلاحات معاصل هم در باشه در کتب عربی در کتب به اصطلاح رسی به عنوان حافظ مشروط حافظ با حی خودتی بعدش علف بعدش خی بعدش هم ز و را، حفظه و اندعا چیزی که انسان رو بندگیزه یه ها حافظ در لغت تردیزی هست این در لغت عربی ها قدید ولی حفظه و الازانه یه رو بندگیشه این کار. هم باب تحقیلش به کار روزه میشه هم باب سلاتی و متقردش علاقا حافظ و مشروط اندیزه های شرکی شده در لغت عربی اندیزه های شرکی شده خب میدونیم آزمایش معروفی از بالمستقیش می ادیشون بون روسیه تصاح ناحی به دانسران به این میهیسی لسا ادو اصلا در حال وجود ایدار مصالحی تگه حافظه منش تا دی مولاژین راست باشه اینا به این نکته رسیدن که انسان یک یعنی حیوان هیبر انسان یک خاصیت غریزی داره غیر از قضای معانی در این ساختله غریبی میتونه عواملی که به عنوان علت مییستن واقعا جایگزین علت واقعی بشه این کلمه علت واقعی نیست در انگلیسی لفظی به کار بدن که کلمه شرقی به فارسی ترجمه کنه شما میگه به عنوان عوامل واقعی عوامل شرقی کاربرد خب میگه اندیکاتور داده سوالی که باید در نظر گوشی مرادشون از انگیزه های شرطی شده یعنی امامل و علمی که واقعیت نداشتم، و که در رابطه باید علت واقعی قرار گرفتن این علمتی جهنی واقعی شد خود این خصلت در ذات حیوانه اما آزمایش محروف که وقتی برای حیوان قضا میومد زنگ زد بعد از دیستو یک بار که قضا بود و زنگ زد زنگ زد اما قضا رو نبود این حیوان لعاب دهنش جا می یعنی, یعنی این که صدای زندشین آماده است از واج بشه خب این, اون واحدی برای این که به اون عامل واقعی برای اینکه لواغه دهان ایوانجیل میگه خود خدا خود قضا عامل واقعی میشه صدای زنگ تا عامل واقعی نیست باشه اما این شیمینده صدای زنگ رو با قضا همراه کنه بخاطر اینجا در عمل که بخاطر خیلی لطیزی داره در چند بار پیدا میشه اگه بخواد این عامل از زندرش چند بار باز انجام AdS بکنه ما به اون بحث میشه. این اصطلاح هم در زبان فارسی ترجمه شد به انگیزه های شرقی شده حالا شما اگر شاید زبان خود رو عوامل جعلی، جهلی، قراردادی، قرار دادی تصدیل اوامل طبیعی هم دیدن نکردار برای حیوان موجب این میشه که لعا دهانش جاری بشه اما چراغ روشن کردن عامل این کار نیست صدای زن آمل این کار نیست درزدن آمل این کار نیست اما میگه اگر شما قضا توی حیوان بردید 20 بار حساب کردید بیسی اگر بار بار قضا بردید همراه قضا زدن و قضا بردن رابطه ایجاد کردید بعد از 20 بار دست باز به حیوان جارید این واقعی قضا نباردید ده هر شده یا عوامل جهلی و ق تفسیری که شده برای لغت از این تفسیر یه تفسیر اون تدایی معانی بود که الان توضیحش عرض کردن در زید کلمات رسال یه تفسیر اینه که نه لغت از تداری, تداری معانی نیست از تداری اندیزه های شرطی شده اون این بنده احساسه اسمین اندیزه های شرطی شده و تداری معانی باشیم رابطه قریبی یعنی رابطه واقعا وجود داره در ذات حیوان جهلی نیست اون اینه که حیوان میتونه بعد از رفت یک عامل غیر طبیعی با عامل طبیعی بین اینها اعتبار برقرار بکنن خوب لفت کنید ببینید چونها وقتی مثل لحظ مثلا لیمو یا هروا گرد و هر هروا هر درشید نمیشه ممئن رابطه بین خود موضوع خارجی با لحظ پیدا میکنید مثل که رابطه بین درست زدن و آق پیدا میشه بین خذا و زدن. به این زن و قضا بگموشی اصطلاح هندگیزهای شرطی شده البته از حوضایفا هم بعضی ها این مقنه رو رو این مقنه رو در از غربی قبول کردن بانوان هندگیزهای شرطی شده از حسیل لغت و رابطه برد شد, نم شد بحث نموشی بحث بحث بجایی هم حتی که به خاطر مراقبه فردای توضیحات اینش رو ارزم کنیم و صلی اللہ علیه محمد و آله طاهر